بگو یوز بیم در دل مدار نه از نامور دادگر شهریار. کنیزک به دو گفت که از راه داد منم دختر مهرک نوش داد. مرا پارسایی بیاورد خورد بدیم پرهنر مهتر ده سپرد. من از بیم آن نامور شهریار چونین آب کش کشتم و پیشکار. بیامد به پردخت شاپور جای. همی بود مهتر به پیشش به پایینی که از خدای به بدو گفت این دختر خوب چر به من ده. برای من گواه کن سپهر. چون که موقعی که در ایران دختر رو گواه می گرفتن برای پسر هفت نفر باید گواه می بودن که به نشانه هفت امشسفت که گواه می شدن که بله این دختر شدنه. در اینجا سپهر و آسمان رو کن کسی نیست خب بودم که این سربازانی که باش همراه بودن اونا رو در شمار نمیورده میگه که سپر رو گواه بگیر به دو داد مهتر به فرمان اوی ببردش از آنجا سوی خانه اوی بسیر برنه آمد بر این روزگار که سر به سهی چون گل آمد به بار. وران نام شاپور کرد اورمزد این قولی که به بار اومد یعنی فرزند. وران نام شاپور کرد ارمزد که سروی بودن در میان فرزد. فرزد چمنه. و در زبان خراسان امروز هنوز فریز به بس بسراب بس فریز خونده میشه. ولی در کتاب ها دیگه نیمده. نام شاپور کرد ارمزد چه سروی بودن در میان فرزد. حق کست نهانش همی داشتن به جایی به بازیش نگذاشتن به نخشیر شد هفت روز رو به شد نیز شاپور نخشیر گیر یعنی شاپورم با او رفت نهان ارمزد از میان و گروه بیامد کزاموختن شد ستو ابا کودکی چند و چوگان و گوی به میدان شاه اندر آمد زکوی جهاندار هم در زمان با سپاه به میدان بیامد ز نخص بزد کودکی تیز چوگان زراه بشد گوی گردان به نزدیک شاه. نرفتن تیشان پس گوی کس بماندن بر جای ناکام بس. یعنی بچه های یارای اون نداشتند. نیارستند یعنی جرأت نکردند. درست همانند داستانی که پیشتر برای شاپور رو گفته شد. دوان ارمز از میانه برفت به پیش جهاندار چون با تفت، سه پیش نیا زود برداشت گوی از او گشت لشکر پر از گفت و گوی. از آن پس خروشی براورد سخت که آن خیره شد شاه پیروزبخت یعنی بچه خروش برداشت به موبت چنین گفت که این پاکزاد نگه کن که تا از که دارد نجات بپرسید موبت ندانست کس همه خاموشی برگزیدند و بس به موبد چنین گفت پس شهریار که بردارش از خاک و نزد منار، بشد موبد و برگرفتش ده گرد، ببردش بر شاه آزاد مرد. به دو گفت شاه گران مای خورد، تو را از نجاد که باید شمارد؟ نترسید کودک به آواز گفت که نام و نژادم نباید نهفت منم پور شاپور کو پور توست، ز فرزند مهرک نژاد درست، بفرموند تا رفت چاپور پیش به پرسش گرفتش اندازه پیش به ترسید چاپور آزاد مرد دلش گشت گشت درد و رخسار زرد بخندید زونا و شهجار به گفت فرزند پنهان مدار پسر باید, از هر... پسر باید از هر که باشد رواستینی تو باید پسر داشته شدید که جانشینید بشه پسر باید از هر که باشد رواست که گویند که این بچه پادشاست دو گفت اوور و بوی جهان را به دیدار تو شهر بوی زه پشت من است این و نهوم چون لاله اندر در فرز. نهان داشتم چندش از شهرار بهدان تا برایت بر از میوهدار یعنی میوه درخت میوه به دسترسه گرفته د لاویز را بر کنار ز میدان البته نمونه میشه سوی تخت شد چو چون میدان بودن دیگه در... از میدان رفتن زه ایوان سوی تخت شد چهریار بیا راست زرین یکی زیرگاه یکی توق فرمود و زرین کلاه، سر خرد کودک بیا راستن پس از گنج در رو گوهر خواستن یکی باز به ساخت با مهتران نشستند هر جای رامشگران چون این گفت با نامداران شهر هران کسکو که او از خرد داشت بر که از گفت دانا ستاره شمر یعنی کیده هندی نباید که هرگز کند کس گذر چون این گفته بود کیده هندی که بخت نگردت تو را ساز و خورم به تخت نگر تخمه مهرک نوش زاد بیا بیامیزدان دوده با این نژاد چو شاپور رفتن در آرام خیش گیتی ندیدن بهجز کام خیش زمین هر کشور مرا درشت راست دلم بیافت از بخت چیزی که خواست. خدمت استاد جنیدی و برنامه پنجره های روی خواستم بدونم آیا شاهنامه شهست هزار بیت هست امید از چرمین. شاهات باشید نه این شهست بیت ساخته کارگزاران دستگاه غرزنویه که خواستن نشون بدن که شهست هزار بیت بود و به دروغ بگن که فردوسی میخواست شهست هزار دینار سله بگیره اینا همه دروغ های آنگاست. و شاهنامه که تو اکنون در دست هست حدود چه هزار به داره که من که ویرژ کردم از اینا کم کمم خواهد شد. مونتا هنوز ما از کامپیوتر نگرفتیم که اون بخش های یرژ شده چند بته. با درود و سلامتی خدمت شما آیا نقش کمانداری که پشت سکه های اشکانی هست با آرش ارتباطی دارد زیرا فردوسی بزرگ در شاهنامه آنها را از تخمه آرش میداناند. خواهش میکنم بیشتر توضیح دهید با سپاس امیر محمدیان از احواس درود بر شما و با دشت های گرم خوزستان آرش نامیست که در عوستان ایرخش اومده ایرخش معنیش ایرانیه و این نژادی بوده که پس از تسلط نخستین تورانیان سر براوردن از کوهستان مانوش که کوهستانی پیرامون گو دمووند بوده باشد و چیتر به زبان اوستایی که چیتر شد در زبان پهلوی و چهر شد در زبان فارسی یعنی نژاد، مانوش چیتر یعنی نژاد مانوش یعنی کسانی کسان که از نجادی بودند که پیرامون و گو بودند اینها تورانیان رو در حقیقت در نبرد پسین راندن بیرون از ایران با جنگفزار برترشون که کمان بود این در یک داستان دیگه به صورت آرش در اومد که می‌بینیم که او هم بر فراز خودم آمده و از اونجا کمان میاد کنند دور نیست که اون کماندار مفهومش همین آرش کمانگیر یا ایرخش بوده باشد با درود خدمت استاد فرزانه استاد جنیدی منده نماشید میخواستم بدانم چاله تازیون یعنی چه منطقی؟ جایبرامین به این نام است با سپاس تو توماسه می‌خواید چال تازیون تازیون بله خب چال میدونی که به معنی جایگاه هست مثلا در توچال و پیوتچال و یه اینش بسیار در شمال تهران هست با چال ما می‌بینیم و در جاهای دیگه ایران هم در بندر با اسم چال داریم یعنی جایگاه تازیون هم میتونه یون پا... پایانش به منی یان باشه یان یعنی جان یعنی, یعنی جایگاه بازم یان کن، جان یان زان شان همه اینا پسمند جایگاهه و بنابراین اینا اسم باشه که از سه بحره چال یعنی جایگاه و یان و توز پدیت اومده باشه با درود نظر استاد درباره نظریه نظری ایران شناسانه این چاوسانی چون دیویس و الگا دیویسن مبنی بر شفاهی بودن منابع شاهنامه چیست نوایی ل... از لمای... نوایی نماییه... لواسانی است اهرام شاد باشید اروپاییان چون که حساب به ایران واقعا یک حسد شگفتی دارند و, و اومدن همه رحاورت ها و فرهنگی ایران رو در زمان اسکندر گرستک به باد دادن تمام دانشمندهای ما رو کشتند و دیدن که چه عظمت بزرگی پشت کار فرهنگی ایران هست از همون زمان اینها قینه بیشتری از ما با اینکه که ایران کردن و سختند بازم قینه دارن اروپایان هنوزم چنین چیزهایی میگن خود فردوسی میفرماید که یکی نامه بود از گهه باستان فراوان بدو اندرون داستان فراکنده در دست هر موبدی از او بحره برده هر بقردی یکی پهلوان بود دقان نجات دلی و بزرگ و خربمند و راد پجوهندهی روزگاه رو نخوست خوز از چست ها و همه باد جست این پهلوان و بزرگ روان شاد ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق کنه کنارنگ و خراسان بوده چند بار من در این برنامه گفتم این به فرمان ابوبکر این نامه رو گیت کردند. کردند تا از هر شهری اومدند یکی از شهر توس بود به نام شادان برزین موبت شادان برزین. یکی از شهر نیشابور بود موبت موحد خورشید یکی از سیستان بود موبت از دانداق پور بهرام و یک پهلوان و بزرگ خراسانی به نام ماخ ماخ یعنی بزرگ از شهر هرات این چهار نفر در توس گرد آمدند و در سال 356 س... و, و شاهنامه رو از متون پهلوی ترجمه کردند به متون فارسی اروپاییان هیچگاه از گفتن دروغ پروا نداشتند اروپاییان نمیتونند این همه عظمت و شکوه رو در شاهنامه ما ببینند بنابراین همواره هایی کردند که با همراه نیست سی و دو سال پیش من این کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان رو نوشتم که نخستین تفسیر بر شاهنامه فردوسی بوده دیاری از اون دیگه نزدیک است که داستان ایران به دست برسه و دست بچه‌ها استاد من درست میکنه. با امید و, و خواهید دید که نه این چنین نیست این همه وقتی که در کتاب استر میاد کتاب دهم استر میاد که آن شب شو شو آن شو تو یعنی شور بده میگه و بر اون نامه شاهان پیشین را می‌خواند یعنی پیرامونه 2450 سال پیش ما نامه شاهان پیشیم داشتیم بیدار شو ایرانی درو در استاد از نظر جغرافیایی تقریبا خارز در زمان حمله مغول با منطقه خراسان بزرگ یکیست آیا کلمه خارز و خراسان نیست از یکیش هستند با تشکر سرکان خانم مونیری از تهران درو بر در شما خراسان در زبان پهلی بوده خواه راسان یعنی آمدنگاه خورشید آسان یعنی آیان خراسان آن بود کذبهی خراسد و بخش عظیمی در بر میگرفته که شامل شهرها بوده مثلا سمغند و بخاراو و تاشکند و دیگه و از جمله خارز نه خواهی در اوستاو بوده و این در اوستاو خود خوراسان که به فهلهو خراسان هست در اوستاو بوده اوشست ایری اوشست ایری اوش به زبان اوستایی یعنی روشنایی اوشست ایری یعنی جایی که روشنایی از اونجا برمیاد در همون زبان اوستایی نام خوراسان اوشست ایری بوده و نام خوارزمی خو بوده پس بنابراین از یک ریشه نیست سلام علاقه به درختی خاص از روی احساس هست من خودم به چنار علاقه دارم احساس میکنم که درخت در ایران است. کمی توضیح بفرمایید ممنون رضا. بله چنار درخت خوبیه که مرموان در آرامش بدام کنند و میتونه که خیلی که باشه و بعد چنار وقتی که هزار سال 2000 هزار سال زندگی کرد و مورد از اطراف شاخه‌های بیرون می‌زنه که شاخه‌ها باز می‌تونن 7800 سال عمر داشته بودن شما اگه می‌خون یک از این چنارها رو ببینید در محوطه‌ای بوده که بیشتر آتش کرده بوده در در پونک اکنون میگن که اینجا امامزاده است به نام عینلی زینلی نام درست در نمیاد یعنی عرب عینلی زینلی نام نمیگذارن معلوم میشه که اهالی پونک اونجا رو که قبل بیشتر آتش کرده بوده نگه داشتن به عنوانی جایگاه که در ایران بسیار از این کار اتفاق افتاده شما اگه خواسته باشید ببینید اون چنار عظیم رو میتونید ببینید که حالا چنار میانین سخته و اطرافش شاخهایی زده که هر کنم 800 سال داره چنار زیر سایه چنار مردم زیست آرامی دارن بله. شما میتونید با تلفن‌های های 200-200-485 220 485 220 588 20 220 588 20 تماس بگیرید سوالات خودتون رو مطرح بفرمی ساعت 22:28 دقیقه هستش تا پایان برنامه زمان زیادی نمانده حتز زودتر تماس بدید سوالات خودتون رو مطرح بفرمی منم الان من در بوی درسات هستم و صدای شما رو زدم کرد سالتون رو رضبت میکنند و ما اینجا پخش میکنیم استاد جنیدی پاسخ خواهند گفت و زار پاند و پنجا باز هم شما خواستید ایک بار دیگه تلفن یا همون دورواج بنیاد نشابون رو خدمتتون رز میکنم هشتاد و هشت نود و شش بیست هفت هشتاد چهار هشتاد و هشت نود و شش بیست و هفت هشتاد دو چهار هر سوالی دارید از استاد جنیدی میخوایید تماس بگیرید ارتباط برقرار کنید با بنیاد بود از این طریق میتونید تماس بگیرید و آدرس رو بپرسید و برای تعلیفات دیگه استاد جنیدی هم در بنیاد نشابور به دست بیاری سپاس پذارم دو تا با ما تماس بگیرید اصلاد آبی بروشید خسته شدید منم همشت دارم یه بزنی نه میان آمادن به خود نه موسیقی بشتمیم من خودم دارم دیگه نه موسیقی بشتمیم قد در خودتن سن داستان داد و فرهنگ اردشیر به این تفتیب اردشیر نشونده که ما با داد در حالی که اگر به خاطر داشته هفته پیش خوندیم که جهان راست کردن به شمشیر داد اون چیزی که با شمشیر راست میشه با داد نیست با ستمه داد یعنی دادگری با شمشیر کار نداره به هر حالا این بخش هم نشون از طرف ساسانیان نشون میده که با داد همراه خوده من یه خود گیت شدم این همی هرم از موقع که داستان نمی کارمان اردشیر باباکان اومده من یه خود گیت شدم بالاخره من متوجه نشدم با این که یاد کرده این چجور آدمی بوده الان میبینیم الان میبینیم اینجا نتیج داریم چما ما رو بیبش اینجا اندقی... نتیج نتیج میکنیم اندکی درنگ آها آه خب <تصفيق> بکوشید آین نیکونهات ای بگستر بر هر سویی مهر داد به درگاه چون خواست لشکر فوزون فرستاد بر هر سویی رهنمون توجه بفهمید؟ <تصفيق> برای چی لشکر فوزون خواست؟ برای که بیشتر... رو بزنه؟ بیشتر بر هر سویی رهنمون یعنی نماندگان میفرستاد که تا هر کسی را که باشد پسر نماند که بالا کشد بی هنر, هنر یعنی جنگ آوری. هونره و ایتی در عوستا بوده هونره بازم در عوستا بعد هونر در پهلاوی و هونر در فرسی یعنی جنگ آوری خب که هر کسی را که باشد پسر نماند که بالا کشد بی هونر. سواری بیاموزد و راه جنگ به گرد و کمان و به تیر خلنگ چو کودک توجه بفرمایید چو ام. کودک به کوشش به نیرو شدی به هر تخششی در بیاوه شدی تخشش یعنی کوشش بازم یعنی جنگ. در است در پهلوه تخشیشین اومده به هر تخشیشی در بیاهو شدی ز کشور به درگاه و شاه آمدی بدان نامور بارگاه آمدی به لشکر بیا راست گیتی همه شبان گشت و پرخازجویان رمه میبینید اینجا کاملا روشنه که کودکان رو به دستشون شمشیر داد و تا اونها بدون خرد هر کسی رو آهنگه در حقیقت عدشیری میکنه اون رو از میان بردارن به ویژه اومده کودک و این بود تا زمان پهلوان بزرگ ایران بهرام و پرگوشت که میبینیم اون چهل سالگان رو نوشتن نام خواهد اومد خواهیم دید که اونجا ایراد میگیره که چهل ساله، چرا میبریم میگه که کودکان از بودند و به کوچکترین چیزی ممکنه که فریب بخورن و به کوچی فرین چیزی به درنگش نباشد چکیب ببینی که جایی که باید درنگ بکنه شکیب نمیکنه کنه جایی که با شکیب کنه درنگ نمیکنه این کار رو در حقیقت عربشیر بنیان گذاشت که شمشیر داد دست کودکان تا کودکان کی رو بزنن؟ مردم, مردم رو. خیلی روشنه اینا به ایت پرسین به لشگر گیتی همه شبان گشت و بخوش. چون رمه؟ پادشا باید شبان مردم باشه نه شبان پرخواست شبان مردم بکشه نه. به این ترتیب خب بله مردم یکی تا ده تا صد تا هزار تا وقتی کشته میشن کم کم دیگه ساکت میشن چاره ای نیست جلوی کودکی که شمشیر دستش چه چه کار کنن ها ای بله. این واقعی تلخ بله. به دیوانش کارابه هم داشتی به بیدانشان کار نگذاشتی رفتی سوی کشوری کاردار به شاه گفتی درم خاردار یعنی هرچی که لازم هست که شما خرج کنید نباید که مردم فروشی به گنج که بر کس نماند سرای سفنج همه راستی جوی و فرزانگی زی تو دور باداز و دیوانگی زه پیوند و خیشان مبر بر هیچ کس سفاق آنچه من دادمد آنچه من یار دادم، بس هران کسی که رفتی به درگاه شاه به شایسته کاری وگر دادخواه شدندی برش استواران اوی به پرسیدن از کارداران اوی یعنی استواران نموت همدان اردشی این کسی که اومده به چه کار آمده میپرسیدن ازش خب <تصفح> رفتی به جایی به جنگ خرد یار کردی و رای و درنگ سپه را بدادی سراسر درم به تا نباشند یک تن دو جم یعنی پول, خ... پول رو از سپاهیان خودشین از همون بودکان دریغ نمی کرد یکی پهلوان خواستی نامجوی خردمند و بیدار و آرامجوی دبیری به آین و باده که دارد بیداد لشکر نگاه آن پس یکی مرد بر پشت پیل نشستی که رفتی خروشش دو میل زبیبان که نام داران جنگ هران کس که دارد دل و نام و ننگ به چیز کسان کس میازی دست هران کس که او هست از پرست به دشمن هران کس که به مود پشت شود زن سپس روزگارش درشت به سالار گفتی که پستی مکن همین همان تیزی و پیش دستی مکن همیشه به پیش سفه دار پیل تلاویه پراکنده بر چار میل چار میل هر یک میل 1500 گز 1600 مندی متر امروز بوده یعنی در حقیقت یک فرسنگ امروز <تصفيق> چه اصلاف کند لشکر از هر دو روی در آیند گردان و پرخاش جوی. نباید که مانت تهی قلب گاه اگر چند بسیار باشد سپاه قلبگاه رو هیچگاه یعنی خالی مکن. اگر قلب ایشان به جنبه زجای تو بالش کرد از قلبگاه هم برای. چو پیروز گردی کس خون مریض که شد دشمن بدکرش درگوریز. چو خواهد ز دشمن کسی زینهار تو زینهار ده باشو کینه مدار. آن کس که گردد به دست اسیر بدین بارگاه ها برش نگذیر. من از بحر ایشانی که شارسان براغرم ببونی که بود خارسان از این پندها هیچگونه مگرد چه خواهی که مانی تو بیرنج و درد به پیروزی اندر به یزدان گرای که اون باشد بیگمان رهنمای فراوان سخون در نهان داشتی به هر جای کاراگهان داشتی ببینید اون سخنان با این با همدیگه همخان نیست وقتی که سخن رو پنهان می داشت از همه کس و به هر جای کاراگاهان داشتی یعنی در کار مردم جاسوسی می کنید کاراگاه یعنی اون جاسوس کاروگاه یعنی برای کسی که از آگاه می دیگه پس اونا که من این کارا میکنم، داد می ام... می اینا همه با این سخن در حقیقه نا همگونه فراوان سخون در نهان داشتی به هر جا داشتی بیا راستی چون به بایست کار نگشتی نهانش به کس آشکار این دو بیت یعنی در حقیق سیرت اردشی رو نشنده. حالا بازمارفه چیزهای روشن میاد به هر برزنی در و بودی همون جای آتش بودی آتش پرستان یعنی موبادان یعنی کسانی که پرستار آتش هستن نگهبان آتش هستند و این موضوع باید شده که بگن که ایرانیان آتش پرست بودن نه پرست یعنی پرستار که با خوشبختانه در واژه پرستار هنوز باقی یعنی نگهبان آتش که نگذارن آتش خاموش بشه خب. به میدان شدی بامداد با پگاه برفتی کسی کوبودی دادخواه نجاستی به دادندر آزرم کس. چه کهتر چه مهتر چه فریاد درست اندرز اردشی رو کن. زهر مرز پی بسته شد باج و صاف توجه هم بودیم؟ باج و صاف یعنی باج یعنی بازور بز شمشی رو همون کودکان از همه جا باج رو اومدن باج و باجی یعنی اینا با... ما باز از این باجه ها پشتش نگاه کنیم دیگه کسی را نبود با جهاندار تاپ یعنی هیچ کس جورت نفس بکشه همه مهتران را از ایران بخوند سزابار بر تخت شاهینشان از آن پس شاه بر پای خواست به خوبی بیا راست گفتار راست چون این گفت که این آم شهر زرای و خرد هر که دارید بر بدانید کی تیز گردان سپر ننازد به داد و نیازد به مهر هران را که خواهد بر بلند، هم آخر سپارت به خاک نژند نجند، نماند به جز نام زو در جهان، همه رنج با او شود در نهان بگیتی ممانید جز نام نیک، هران کسی خواهد سرانجام نیک، زمین هفت کشور به شاهی مراست، چنان کس خداوندی او سزاست، کنون هرچه خواهیم کردن زداد، بکوشیم و از داد باشیم شاد، میبینید میگه که از داد ما شا... شاد خواهیم بود یعنی از دادگری بیدرنگ بعد از این میبینیم که باج را از پنج درصد کرده به ده درصد سنده این داد نمیشه دوباره میخونم کنون هرچه خواهیم کردن زداد بکوشیم و از داد آشیم شاد ده یک که من بستدم پیش از این باج آنچه کم بود گر پیش از این همه از پی سود بردم بخارم معلومه که از مردم گرفتی سود برای سود خودت دیگه به درداشتن لشکر بیشمار برای اینکه که لشکر بیشماری رو که من دارم بسنم خرج اونا رو بدم یعنی بس شما به زور گرفتم خرج لشه همون کودکان کردم بزرگی همی جستم و ایمنی نهان کردن پناه به خاطر کارهای خودش پناه میبره به خداونداله شما دست یکسر سر به یزدان برید بکوشید و پیمان و او مشکنید که بخشنده اوی است و دارنده او بلند آسمان را نگارنده اوی ستم دیده را او فریاد رس منازید با نازش او به کس هران کس که دانت که دادار هست نباشد مگر پاک و یزدان پرست دگر آن که دانش مگیرید خار اگر زیر دستید و گر شهر یار این هم پاسخ البته به است که میگن ایرانیان فرهنگستان و درس و آگاهی نداشتند یا حتی شاهنامهشون معاخذ شفایی داشته سه دیگر بداند که هرگز سخون بری مرددانا نگردد کهان چهارم چنان داند که بیم گناه فزون باشد از بند و زندان و چاه به پنجم سخون مردم زشت گوی نگیرد به نزد کسان آب روی زمانی میاستای زاموختن اگر جان همی خواهی افروختن این این هم از شانوه گرفته که میاستای زاموختن یک زمان زمانش میاست دلن در گمان چو خواهی که چو گویی که نقد خرد یا فام خرد توختم همه هرچه بایستن آموختم یکی نغز بازی کند روزگار که در پیش آموزگار گفتار از اونجا گرفته شده چون فرزند باشد به فرهنگ دار زمانه ز بازی بر او تنگ دار این سخن خلاف اونه که گفت که هرکس باشد پسر نماند که بالا کشد بی هنر. گفته بود دیگه بلد. فرستاد بر هر سوی کاروگاهانو فرستاد که کودکان فقط به کار جنگ بپردازن اینجا آرایش سخنه میخواد بگه که من طرفدار دانش هستم ولی عملا اونجوری نبود یعنی کودکان به همارو اصله داد نه همه اصولدست دیگه اون بقیه اصولد بود تو بر تخت بشه شوهر شاهرد شیر بشد پیش گاهشی که مرد پیر کجا نام آن پیر خررات بود زبان و روانش پر از داد بود چون این داد پاسخ ای آنو یار انوشه بزیتا و بعد روزگار همیشه بوی شاد و پیروز بخت به تو شادمان کشور و تاج و تخت به جایی رسیدی که مرغ و بد بده زنند از پس پشت تختت رده بزرگ جهان از کران تا کران سفراز بر تاج بر مهتران که دانت سخن گفتن از داد تو که داد و بزرگیست بنیاد تو همان آفرین در فضایش کنیم خدای جهان را نیایش کنیم که ما زنده در زمان توییم و هر کار نیکی گمان توییم یعنی دوستار تو بد گمان یعنی دشمن خریدار دیدار و چهره تو را همان خوب گفتار و مهر تو را تو ایمن ببینی که از تو ما ایمنیم من بادا که پیمان تو بشکنیم پراکنده شد قارت و جنگ و جوش هم آواز دشمن نمید بگوش می‌بینید که بعد از اینکه خودش گفت که من مرتبا جنگ کردم و آسایش نداشتم وقتی که همه گردن کشان ایران را همه اهولی ایران رو را آرام کرد و با به کودکانی کودکانی که شمشیر در دست بودند دیگه حالا پراکنده شد غارت و جنگ و جوش هم آواز دشمن نیاوید به گوش نه, نه کس چون تو داورز شاهان خرد نه اندیشه از رای تو بگذرد پیی برف کندی به ایران زداد که فرزند ما باشد از داد شاد به جای رسیدی همان در سخون که نو شد ز تو مرد کهون بدین انجمن هر که خردها خرد فزون شد تو گفتار تو جهان گشت روشن به دیدار تو بدین انجمن هر که دارد نژات به تو شادمان است و از داد شاد توی خلعت ایزدی بخت را کلاه و کمر بستن و تخت را بمانی چون این شاد با مهر و داد ندارد جهان چون تو خسرو یاد جهان ایمن از رای و از فر توست آنکه که در سایه پر همیشه سر تخت جای تو باد جهان زیر فرمان و رای تو باد میبینید که این در حقیقت خودکامگان همیشه کسانی رو به ظاهر آراسته پیر و سخونگود و خردمند اینا دارن که کارهای نادرست اونها رو در حقیقت خوب و درست جلوه بدن این از جمله این پیر از سال جنهیدی که تا همینجا داستان شاهنامه رو بماند ادامه در هفته آینده باشه و داشته مرد میکردم پریمه همراه شاهنامه بیرایش خودتون چرا با صدای خودتون هم سیدی آماده نکردید یعنی نوارهایی رو آماده هایی که صدای شما خانش شما باشه همراه شاهنامه چرا در بناه نشان ما که شاهنامه خانی داریم نزدیک به سی سال هست؟ این اخیر یعنی آخرین دوره شانم خانیمون نوار پر شده یعنی تصویر و آوا هست میتونن به بنیاد مراجع کنن اونها رو تحقیق کنن حالا برنامه مام همین کارو رو داره میکنه برنامه ما هم میتونن چون از آغاز بودید شما میتونن برنامه ما رو هم داشته باشن از طریق سایتمون بله. بنیاد بله. از بر... این برنامه کاملا از آقاز شاهنامه توپایی نبوده بعضی جه رمز و رازگشایی بوده بعضی جه ها گریز زدیم به داستانه آینده اینا فرق نمی کنه شاهنامه است اما اگر بخوام که پشت سر هم داشته باشن در بنیاد این شبور این نوارای پشت هم هست. بله. درود اگر آریاییان کوش نکردن پس, چه پس کتاب زندگی و کوش آریاییان به چه معناست؟ است؟ چرا اروپاییان؟ باید نسبت به ایرانیان کینه بوزن سپاس گذارن. زندگی و مهاجرت آریایان رو که من نوشتم نشون میده که ایرانیان در اینجا زندگی میکردن و بعد از اینجا کوچیدن رفتن اروپا رو تشکیل دادن همون اقوام اروپایی که این نه که جای دیگه بیان اجای دیگه نه از اینجا رفتن مثلا میگیم ف... نجاد گول گیل نجاد اسکوتلند سکایی هستن نج نژاد پرتغال پارت هستند نجاد غیر از گفتار من این یکی به ویژه اسپانیایی یا اسپانی سپاهانی هستند هستن. در یک کتابی که هزار سال پیش نوشته شده اونجا میگه که سردار اسپانی از سپاهان اومد اینجا و اینجا تشکیل زندگی داد و تشکیل داد تمام این در حقیقت اروپاییان از ایران مهاجرت کردن، کوچ کردن به اون سو نه از جای دیگه به ایران مهاجرت بکنن بعد شما میگید که چرا اونا با ما باید کینه, کینه داشته باشن پاسختون این شعره توانمان که نه یه در اون کسی حسود را چکنم کوز خود در است. این شعر از فیدوسیه ها از سعدیه توانمان که نه یه من در اون کسی حسود را چه کنم؟ که ز خود برنج درست؟ بمیر تا برهی ای حسود که این است که از مشقت آنجز به مرگ ندوان رست. اروفایی احساس حقارت میکنن در براور ما. در همه جهان غرب یک کتاب مانند شاهنامه نیست. در همه جهان غرب هزار سال پیش یک کس مثل پور سینا نداشتن. در همه جهان غرب یک کس مثل خیام نداشتن. مثل بیرونی نداشتند خب باید احساس حقارت با سلام از اونجا که فردوسی جمع این شاهنامه بوده نه نویسنده آن این احتمال درست نیست که ها کار فردوسی بزرگ بوده است وحید درود بر شما خیر دواری شما درست نیست فردوسی ترجمه کننده شاهنامه از متونی بود که الان چهار مت ترجمهان رو نام بردم اونا از متون پهلوی ترجمه کردن به فارسی و فردوسی اینها رو آراست به سخن خودش و گفتار خودش و شعر خودش فردوسی گردآورنده نبود ترجمان درست شاهنامه از ترجمه متون پهلوی به شعر فارسی بود عجم به چه است؟ عجم به معنی کودن گونگ بیخرد یعنی, بدایم یعنی بدایم عرب, عرب, عرب ما اینطوریم با خودشو اینطور خیال میکنم میگه <تصفيق> که دوقت فرص اصدی توسی میگه که اجام کودن و گنگ و بیخرد با لجوج باشد و بی و شرم دوقت فرص اصدی اینجورا بوده لجوج باشد و بی و شرم نه نه ببخشید نه اون درباله سطرک بود اجام کودن گرگ گنگ و بیخرد نه <تصفيق> دوستی هم به تولد استاد شریعتی رو زنیاد شریعتی بزرگ رو خدمت همه اندیشمندان ایران گفتند و تبریک گفتند و, و آقای شمسایی فکر میکنم بل آقای شمسایی از رشت بادرود تولد استاد شریعتی بر همه اندیشمندان ایران پاینده باد شمسایی از رشت خب این هم من بخونم تو من نمیدونستم ارش چند سال حکومت کرد و چگونه کشته شد؟ به سال شوار رو ندارم این نخستین پادشاه اشکنی بود که به معنی ارش اصلا به زبان اوسایی به معنی راسته. مثلا ارش و چنگ یعنی گفتار راست و ارشک و اشوک و اینا اشوم اینا همه از همین ریشه ارش به معنی راست است. منتها شما سال های پادشویشو الان به یاد اینو علشق از اصفهان فرستاده بوده این پیامک رو. سلام استاد بزرگوار استاد جنیدی داستان ایران چه شد؟ تو نمایشگاه هم که نبود. مثل که شما تازه وارد برنامه شدی، برای که من <تصفح> نیم ساعت پشت، 20 دقیقه پشت مورد صحبت کردم، آخرین مراحل رو خوشبختانه می‌گذرونه و دیگه مثلا برای جشن مهرگان به دست برسه با میدوند با. پرسیدن درود بر استاد جنیدی گرامی ریشه و ری جان از گان است یا, یا جان با سپاس باور از بندری است شاد باشید از ریشه گی عوستوی است گی یعنی جان و گیا گیا یعنی جان در واژه کیومرس است گیا در زبان عوستوی گیا یعنی جان و مرته یعنی میرا جان میرا یعنی در حقیقت که که شخص باشه نخستین کس باشه اشاره به دوران خیلی خیلی بزرگیه که در اینجا جان پدید میاد در جهان و ویژگی جان یعنی میرندگی بعد از این گیاه مثلا گیاه و گیان الان به زبان رو کرده یعنی جان در پهلوی هم گیاه یعنی جان و در بسیاری از نام دیگه مثل گاو و گیاه و گسفند و اینا ما این رو حواسم پرد شد، چهرونده 22 و 56 هست و تلفون های شما رو ما نمیتونیم پخش کنیم، ببخشید زمان زیادی نداریم و حواسم میدفع رفت پای بیومگای زیادی خوندم. یکی از خلا دوستانم گفته که اینم من بگم فوری بگم بعد برنامه رو تموم کنم صدقان شرابیم اشاره میکنن سردویر یک شمب شب های پنجرهای روی مهتا فیشگاه بین شرابندگان فرق نگذارید این کار زیبنده شما و شبکه شما و شبکه فرهنگ نیست تشکر از مسئولان فرهنگ شما اگر پشت این دستکانه شسته باشید و ببینید روز مثلا 300 تا 400 تا پیامک داره میاد این پیامک ها رو ببینید خود اینها رو خوندن به نظر من خیلی سخت هستش. ما یه حدیه حد زمانی داریم داستان اصلی و کار اصلی ما در برنامه پنجره‌های به محطاب شاهنامه‌های شاهنامه هست که استاد برای ما استاد جنیدی برای ما میخونه با این حال این چنین یاران که برای ما پمک میدن و انظار به پاسخ من از سوی من به اونها پاس و سپاس و درود خب همینطور که که قواعدی گفتن درسته این زمان نیست مگر این برنامه گسترده بشه مثلا سه 4 ساعت بشه بهم اسفزارم ان شاء الله شاد پیروز باشید استاد جدی همطور شما شنونده عزیز ان شاء در در آینده من نگاه میکنم اگر بوس پیامکی بود که حتما از شما میخواد ممنون همکارانم هم سپاسگزارم از همکارانم هم که عمر هستند در مقام فرمان مردم ایران خداحافظ